أعوذ بالله ومعرفة الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعزومين ونعف الجائمة وعلى عدائهم أجمعين اللهم اعفرنا جميع المشترين والحمنا ورحمة يا رحمة الرحمين بحث درباره باره مبارکه خلای و غیرون خلق بود و آیا باطلش آقا آیه میشه اصباد کرد که هرچی که طبیل خلق الله حرامه که یکیشم در ما نحنوی و کتابگردن کردن بیش کسید به بحث طولانه شده به مغزاری پرس کرد از مجموعه کلماتی که اده از علمای آمن که از فکر این بحث در میانه علمای آمه در دنیای اسلام باید گفت از زمان صحابه شروع شده و صحابه و تابعین و تابع و تابعین و فوقها به مسادین مختلف و موارد مختلف در این باره صحبت کردن و تصیح کردن اده از علمای اهل سنت همینه که اسمشون رو اجمالا این آیه مبارک رفت دادن با آیه و کلالی و... که اوهینا که الیک اوهینا که الیک هنه تب امیلت ابراهیم حنیف هم فساس الله عزیز فتران ناش علیه حالا تبدیر در خلق الله اونجا تغ... تغییر بود اینجا تبدیر زالی که دین رو خییم ولی زا در روایات ما هونی که دست ما بدم رسیده تمامشون تصدیر کردن خلق الله و بنای دین الله یا امرالله یا امرالله به ما امره ما الان در روایات موید تفصیل ندارم این روایات هم تفصیل سمده مختل در عربش علمی ندارم توضیحاتش صابقاً گودنش این. چون این احتمال هست انصافش که این دو سعالیه با هم نانتبذ باشن و در حقیقت این دین حنیف دین قیم طبع ملت ایراهیم حنیفه این که در زیر بعض از آیات هم از روایات ما وارد شده که یکی سندش برد نیست اما بنظر ما شروحه داشته که حنیفیت رو بیان فرموندن در چیز یا در ده چیز در بدن و در رأس و در روایت اهل آمه هم بود لکن از فکر در شمارش اونها اختلاف و احتمال ارتباط این مسئله با حنیفیت هست بعد سامان هم کلمه حنیف و حنیفیت هم در مکه استعمال شده هم در مدینه لیکن من فکر میکنم بیشتر ناظر به مکه باشه احتمالا لفظش و قیفیت و شاقیت میخوره به الفاظ مکه باشه عربی مدینه ترونه عربی مغلد جدیدتر اینطور الفاظ مکه نو دور رو کم داره. و سرشم همین شده که علمان و بزرگان در طول تاریخ و مفسرین روحویین و در تحلیل این واژه هنف و هنیف و هنف ها و اختلاف کردن این اختلاف را کار نداریم قولی چی موقع قول در نمیتی این اختلاف قبل دل کل بشه دلالت میکنه که اصل این خدمه حرفی نیست حالا گفتن ابریه باید افنا آرامی آرامیه باید احتمالات متعددی داده شده همین که احتمالات همین که ریشه نداره یعنی همین که استعمالات متعدد نداره شونه هر لوقت هر واجه مثل یه درخت نمونه بعد درشه روتری کچیکی هم بعد درشه روتری گزرگی هم بعد درخت 2 متری هم بعد درخته بسیار تنابر و بسیار و شاخه واجه ها در درد اینجویه بعد دیاشه خیلی کسی برای استعمال و خیلی کرش به شاخه کرکرو پر از که مثلا این خیلی ضربه یا زربه زارب مضروب مزراب میدرن عربه, عربه،, عربه است از امنوع مختلف یعنی مختلف زاربه و وقتی اصلا نگاه میکنه میبینه هم در حیات مختلف رفته اشتغاقات زیاد پیدا کرده مواز مجازی متعذف پیدا کرده به خلاف بلدر الفاظ مثلا حتی مثلا اگه ممکنه فعلا فعلا عادی ازش باشه این یک نکته است ان شاء از خدا وقتی که تو بحث لغت همه ما در دوره حساب توضیح بده چرا اونجا مثلا این که در لغت عرب سافره استعمال کردن اونجا توضیح دادیم چون احتمال سفر که خودش یک مفهوم یعنی دور بودن انسان از مقر زندگی این در لغت عربی ازش شیعت فکری نگردنه نه سفر سافره به سفر. در جایی که از شیعت فعیلی نسان بیارن خواهی نخواهی بردن سلسل سلسل و بادو بادو بگید که افعال مدیدونفی ها سلاسی های مدیدونفی مثلا ارواد بگید سلاسی روایی هم میگم در اصطلاحات شما اینجا غیر ده بله ده ده ده. می به اونجا مثلا فراس سفر رو به باب مفاعله سافر ای اوجد سفر مثلا اینه امیده گفته شده که مازی سفر استعمار شده اما ظاهنم بارد نباشه این سفره سه باشیمه ببینید ما در وقت اولی که زرم داریم یکی زور داریم یا زر اصابه او زر رو منم که یاد بکنیم مثلا کیفیه یکی زر که لامش مشدده این ازش خیلی استعمار شده ما چون لایه زر رو کنم این لایه زر رو از زر رو اما خود ذره مخصود به اصلا با این فکار که به اصلاح این اولان این خودش ذره حدش اصلاح نمیشه. بولنش با مفاعله ما در خود برها هر جا که استعمال شده به این معنی با مفاعله آمده همیتون به بعدها در همون مدینه و غیر مدینه شاست سال و پنجه و سال بعد از اون بولن به باب افعال الان همه عرب ها با افعال مرانه هبر اما در خود لغت قرآن این رو به بار مفائله برده سه از استفاده شده و والدتون میبرن به غیر مزار و لا تمسکون زراعه زراع, زراع مصدر استفاده خودشون ها مصدر با هست مصدر دورون با و فعال و فعال هم پنشم از در مجموع در مجموع در مجموع در مجموع در مجموع دوم با مفاعله زرا این سه تحریل و غریش اینه ها. اگر با مفاعل این اندکه رجال مزاره امو حدیث سماره از این جندر هم اندکه رجال ولا زره ولا زرا اونجا زرا که مجموع دوم با این حالا توضیحاتش یه وقت دیگه جایه مثل این که در همین تصیف حال می تصیف را میخوانن و اما مادر یا جوها مااضری و یاذ مثلا این هییت اینقدر نادره که مثلا ودره به کار نبند ماده شو استمان نکردن مزارش شده دارد یاده ها و اما هم ترعاتی شده مادر که قرار صورتشانده ما باید در کردن مقللا شه. مازی یه دقیقا محضوریس اون وزار همی شده چی خادرشو بایدان روشت اگر به این ها این دوتا مازی نشون میده دقصد بکنید که شاید بردر الفاظ یا واقعا تو هنه اشعار حرب جانه اختاد بودن یا واقعا یک اصل غیرحربی داشته. از اینکه که اشتقاقات مختلف بکتر بود اشتقاقات مختلف فعل مازی مزارک فائل مفعول این حالات مختلف از اون کلمه میاد این روید بحث سرخی فقط نکنیم این بحث تاریخی داره به هر کلمه هم جوری که ما چیز انجام میدیم لغت چیزی چیزیست مثل که از مظاهر تمدن ماست شما در اینجا ساختمان یه جور میسازیم یه جور خاصی میدیم و از اونی در بادی جور در بادی جور دیگر در جنگله و جور هر جوری نیاز ها به ترمون ظروف و خواص و, و تساریت خودشون لغت هم هم لغت اینجوری نیست که خارج لغت وقتی که میبین مخصوصا بنابرای که واضح تدویینه لغت عرب نهارد تدویین در حقیقت این که لغت عربیه شکل لغت یاد از درکات اسلامه راست میگه چون از قدود عوال قرن دوم بود به طرف نوشتن لغت عرب روستنن خیلی متفره بود لغ و ما همین یک مثلا ماوریه در موردش اون که چیه اشی ماوریه رو به کامون گفتن دیگه اون اشایطی رو که در اختیارشون بود در اون که از من باید این بحث بشه اینا اومدن به تاریخ ادب و مثل تاریخ آزاد و چیزهای دیگه رو مواجه کردن و هشامش این این طور نیست که علاشیا بنا اینا این اومدن از دید مناطق مختلف و با شرایط معینی تغییر تا این شب قبل از نبود ما قبل در اسلام توی آن لغت داری، نوشت داریم نوشته داریم در میان عربها، ها این قسمت های حربی ما ما چیزی الان قبل از اسلام نداریم اگر داریم یه خطای دیگه از کارا شر و دو بر اسلام لغت عرب شکل گرفت در این شکلش مثلا نگیم همته خیلی اشتباهات نداره خوبه قدیم کنیم حالا شاید مثلا در اون که دور از این بوده هنفه جا داشته نکه شیلن ما هنفه رو از زیاد نمیدیم هنفه یهنه پا اینا بیشتر دهنده اینه که این الفاظ در اساس خودش عربی نبودن یه یک بوده. ما حتی لفظ خلاف و هم بی این چندتر میبین. چون یعنی سالوزا بوده که از لفظ آرامی یا بابلی قدیم بوده که من دعا و توجه باید به اصطدا نیایه شده ای این به نظر من میاد که این کلمه هنفه هنیف و هنفه از ازفادی بوده که این اصل عربی واضعی نباشته حالا میگم آرامی بوده این یعنی عبری بوده من که احاطه فقط که از نقل از میکنم و بلا اشکال این لحظ اگر در بیش اصلی در مکه مفرح بوده مخصوصا به خاطر هست ابراهیم و اونا خودشون رو برمیره ابراهیم میدرسن به دارش به مدینه هم وسیده به شهر دیگر به حرم هم وسیده این هم بمیشه شایده. چون از خود قرآن دفت میکنی این اصدار سعاری در جواب دکتر بیناداری هم کرده ناسته میگه از خود قرآن اینطور و از آیات خود مدنی همه آیه میکن و هودت او نسارا تهدتو بند بعد از روزان در اون ابراهیم و ما کانه من مشکی این آیه واحده خیلی بیلکی به نصافان استودت درسته از این آیه واحده معلوم میشه که اصلا ترک حنیفی یک بگرد بکنه در مقابل سه چیز بوده همین سه چیز بوده یکی یهود بوده یکی نصاره بوده یکی هم مشرک درمیده نه؟ یعنی این آیه واقعا مصید حوال تاریخی دنیا عرب رو ما از آیات قرآن میفرم از این آیه مبارکه درمیاد میادی که بحثم بحثه ببینید این دیگه من بیشون نگفتم من درم بحثم بحثه حضورت موسا و عیسی نیست بحثیه یهود و نساراست یعنی این یهود و نسارا اینا دقیقا با ملدت ایراهی نیستن و حضرت ایراهی می کنید با ملدت ایراهی این حنیف در مقابل در این مکتب فکریج در مقابل سه چیز وجود داره چون می گفت قابل کن و هو در اون نسارا تحت از اون با رو بله میلده که الهیم از این در مقابل حود و نصارها و ما کان من المشرکین اینم در مقابل مشتکیم از در مکه شایرشون مشتکیم بود نصارها مرزار کمی در مکه نهارو شده کنم اتا گفته شده اونا هنیفی بودن مثل ورفت نقفت و مدینه یهودی بودن توش. و عربها ها اوسو خبرز و هشاره دیگه دیگه دیگه اوسو خبرز هم در مقابل ز یعنی در حقیقت دو طایفه از این سه طایفه در مدینه وجود داشت که مخاطب قرآن بودن یکیش یه یهود و یکیش یه مشرکی در مکه هم مشرکی بودن تکتوکی نصارا بود و اله یهودی باشه تو مکه ما الان سراغنه باشه در بودن یهودی ما الان در مکه بران یهودی سر... چون یهودی هم قادمشون حالات عویی دارن در حالات نجاری اگه یکیشون باشه باشه به همهاش باش بله درست این که در مکه ما باز از یهود سراف نداریم این مساله واسه مطلب خوبی است فهمیدن این که حنیفیت به چه معناست خود علمای اسلامی هم مطلقاً درباره حنیفی بحث کردند پیشتر این اصطلاحشون چون در عربی بعدی حنف به معنای دین را کجیه؟ این یکی از شخصی خیلی محروف عربه به نامه احنف اونقیز که ضرب المثل است از بین تمیمی خیلی محروف است و ضرب در حلم و شجاع در حلم و قیاست و سیاست و خیلی محروف احنف اونقیز که چهرهیه مثلا لقمان موند در اینیان اشاره عربی و در تاریخ نگاه موند این سر تصمیش به احنف انگوش که پاشی نظوری کردی داشته که میان مادرشم شعری افراده و الله الله الله حنف هم در رجلی در اشنو. این حنفی که در رجلش بوده اما من احتمال میدارم تصریح کردم که حنیفیت این میل خب پس روی رای میل داشته اینجا کجی بود این میل ببیند باطل هر کونجوری مناش کرده خودش نیکی به اطلاح کجیه حنف کجیه اونه حنف هم شون پایش کجی شد. اون میگذاشند و برای مگر که باز با حالت رواهی جو در بیاد، گفتن به از باطل هر بیگم. از مجموعه روایاتی که پیش ما هست، حالا صریح و صریح شاید از اونها فهمیم که تهنوف شاید انتقال سمون بوده یا ابری بوده نه در مطالعات ما ابری نه. تهنوف معنای بوده. چون لحظه توهور که ما الان به کار می. در عرب این لفظ ادریه از ما در خودمون توه بکار به کار میبریم در لغت ادریه همون توه رو می میگوستن اشتقاقاتی هم بقیهش از لغت عربیه دیگه طور نیست به جایی به عرب ها یهوگی ها با به حساب اشباع میگوستن عرب ها توهور این توه رو توهوریه بلیه نیست تحنف هم شدیه این باشه انز به بعید نیست حالا من بر میمونه کلمات از لغوی میخونیم تو عبارات اینها نیامده ها ن دتو هم خیلی زحمت کشیده تو عبارات اینها این معنا نیامده اما این اون چیزی که خود من از مجموعه آیات از مجموعه روایاتی که مختلفه مثلا این تهارت تهارت معنوی بوده چون از ابراهیم قائل به توحید بوده قائل به شرک نبوده اسنام رو نمیپرستیده عبادت به اسنام نداشته کراره اخلاق داشته معالی اخلاق ما ازش به مکارم اخلاق هم تعبیر میکنیم معالی اخلاق هم تعبیر میکنیم تو بعضی از روایات معالی اخلاق هم آمده مثلا جزء معالی اخلاق داشته به حسب ظاهر بدنش رو پاکیزه نگرد میداشن این روایاتی که ما هم به ازش داریم یه هیچی بله برد کمپیوتر همونی که امشب ازت سر معلوم کتاب تفسیر معلومه الی این کتابیش معروفه. بوده این کتاب هم آمده این تفسیر نیست در کتاب تفسیر دیگه بوده ایم. از که یه ندار پاکیزی یه زعفری آمده. 5000 فر رأس فر مثلا که اونها شیطان آمده ختمه کرده آمده با اینکه این پنج تا فاکیندی به حسب ظاهر اینها تغییر خلق هستن خوار هستند، های فرانس، مثلا ختمهی مداد روزمره، مثلا کندنی مداد روزمره، کوتاهی. کندن, کندن مثلا موی سر، موی مثلا ریش کوتاه کردن، زیرا زیرآنه به حساب به کار بدن تمیز بدن، مسواک، بازو مسواک اومده خلال اینها ما به اصلاح جزء هنیفیت در دید روایان آمده و زیاده این پیش ما بلاد سهده, سهده درست درست نداریم اما این صافت اینقدر زیاده که آدم وصوب به اطمینا پیدا میکنه یه دوسته تا قدیدش هم خیلی غیر طبیعیه یعنی یه دوسته قدیدش یه که شیخان ختمه که عرض کردیم بعدها این ختمه کردن چون عرب و بعد از حضرت اسماعیل که عرب آمودن اینا همون روی تحنف رختن. خوب دقت قطع بکنید اصولا معروف شد که دین عرب همون دین هنیفیته چون عربی که آمودن دوربر جور همونی همون دوربر از اسماعیل و بردی اشتر شکید و مکه و انتشار شد بعد از زیادی از یمن آمدن که مدرنی ها بیشتر یمنی همشون یمنی یعنی. هست از یمن آمدن خیلی از قبائل عرب اختشون از یمن اینها که آمدن همون تننفی رو که عرب مکه به عرب مصوردان داشتن بعد محروبه که شخصی که حالا این شخص اسمش برده شده نمیسته برقیه مطالب جاولی هم اصولا مسائلی که برمیگرده به دوران جاولی خیلی آمیخته با خرافات، خیلی مبهمه چون لغت نداشتن زبط نداشتن کتابت نداشتن تدوین نداشتن همه هم سینه دو سینه از خیلی مبهمه و که معروفت های که امر ابن لوحی امر که میگن جلد خوزاه هست خوزاهی ها به اون منتظم هم در اسمش اختلافه هم در پدرش اختلاف هم هم در اسمش اختلافه هم در اسمش اختلافه حالا این آقا با تمام اختلافاتش این میگن یعنی اولین عربی بود که رب شام در منطقه بلغاری شام که دقیق بوس خیلی خوش آمد چند تا از اون گفتار به هویج برندا گفت بوسه کرک بین عرب و با از دین اجازی این شروع کرد مسرب داده شده انتشار و خروج از دین عبری من میخوام یک نکته ظاهرا همراه این انتشار اینطور نبود که تمام اون نکته واگذار اون قبیل‌ها که به عنوان هرث ابراهیم بود تمامش از بین برده این مثلا گذاشته نویش که افعال هم که بعد بباره تو همه شهره. این زاره در بین عرب میمونه مثلا مسئله خطان آگه شام رفته شام مسیحی یه باشه بعد حرف در حرف بگواری یهود و الهیو این سنت که ختان باشه هست شد یهود عرب ها خط نشده که حالا اون جنگ طایف دارن که یکی ایسی که قلامشون بود قلام به ها بود وقتی کشته شد نگاه کنید که خط نشده یکی از اون طرف مقابل از سر دارون که اینا عرب نیستن خط نشدن وقت ردیس طایف گفت یک قلام مصیحی است ها همون خط نشده که انما ها میدونستن برای انسان عربی که ختن نشده اون آرعیب رو به این میکردن مخاش شیطان هست. توی روایات وا و این بعنوان سنت ایوانی است. حالا خیلی عجیبه. بوشرسی رو اول نما شفاه در داشتم. تو شفاش نگارشه. نمیزه بعضی از اصولشون که این ممکن ما هم نیست. تو بعضی از اصولشون اختصاله به هم هست تو مست اینجا من توی متون اهل سنت کم روزی که آقای دکتر از یک تو این موسوی ای که بازاری همراه خیال اختصال نیامده. از کدوم که من میذارم تو نصب هم کن نیرو دارم. ایروزشون حالا ولی میخوادم متنشش نشه اگه اسیا اروز بخونی. کل اختصاص به نرجنام آماده. اینم خیلی عجیبه. همچنین اختصاص نرجنام الان نشده. آنو نیرو ندارن. آیا نیرو دارند؟ نصب دارن یا نه؟ دارن؟ دارن یا این در مصادر ما هم نیامده. یعنی در ما به عنوان حنیفیت این یکی نمیده از کردن در ستاقه احتجاج تبرسی حدیثی نه همه ها رو یاد رو سر حدیث مثل میگه شما با یه ایرانی دارم میگه شما اجر اینجور هستیم ما حرب اینجور منجون میگه شما اگر ما اختصال از ما داریم اونجا هم داریم من در روی مسادرشکیه دیده دارم. اما تو مسادر سنیه و از اجایب اینه که حتی اونجا هم در مسادر ما تو احتجاز تربتی من می زن من شون محصوصاً جمهر حدیث یا وسایی هر دو یا یک کنه بشن این باب احتسالی جنابت همه رو مثلا روایتشو کلن نگاه کردم که بیدم آیا مثلا به یک سنده صحیح به یک سند معتبری این مسئله ای احتسال جنابت آمده متاسفانه اونجا ندیدم یعنی ما در روایت خود خود ما هم بلد. در روایت خود ما هم تا اونجایی که من دیدم تا اونجایی بنده صاحبا تفسیر دیدم در همین کتاب اگر آقوم من بگم چون با هم چیز فکر خوبیه که مثلا ریشه این مباحث روشن بشه من فقط در کتاب خودمون هم در اون کتاب دیدم که مسئله اختصال از جنابه در اونجا و اینجا هم در این کتاب المفصل که تاریخ العرب قبل الاسلام و این هم خوب نوشه این اقداری مشبه تشیفید دارد بستش تنظیم نهایی نداره خوب بایدان تنظیم بکنم به نام مفصل کتاب الاول این جلد 6 نه جلد فکسور هست این اثر صفحه 450 تا 439 جلد 6 خوبه اگه وقت کردیم هم به علاوه تاریخ هم به علاوه سالی تفسیری و هم به علاوه از احکام فقهی این بحث هنرهای نگاه بکنید خیلی بحث گشندی داره این بحث هنفهاش یه حوالیت رو هم مستقیدونه داره اما این هنفه خیلی به شنگ بوده از صفحه 449 تا صفحه 512 ایشون راجع به بله مثلا در اینجا در صفحه 413 جایه چند جا داره مثلا ایشون نوشته که مثلا در صفحه 145 من مبصل هست بعد توحید اینو درست کنی تنیف رو هدف اعتقاد به وجود اله واحد طواف به بیت حج به و عمره ووقوف علی عرفه و حج به و احلال به حج و عمره و غیره این چند تا گرفته اونجا مثلا گرفتید بعض مثلا شنیف الذي یستقبل البيت الحرام یا حنیف من یحثه یا حمید من افرام فی امر الله هم یلته فیشه ایه این خیلی لطیق و اگر نه این باشید این چون یک آیه مبالکه یکم یه اشاره داره که این باشی خیلی عجید واقع چید خور آیات مبالکه قرآن با این که جهای متفرقه اون زرافت های حمید فیلت این من مؤمن نظیم آمانو به الله و رسول ایس همون لم یه تابو خیلی حجید اونزه تبدیر اینجا داره حنیف منه اصلا بی عمر الله سلام یلتب فیشه این ایتوانی پیچیدن این ورور هیچ ابهامی پیدا نکنه ذهنش رو خید عجیبی اگر تفسیر حنیف باشه اون وقت ایشان بله بعد مثلا داره که ذکر و بعض احل اخبار انده الهنیف انده ال احل من اختتم و حج بید من یک در قفاستی می در در ضرور یه ان انه و عرب زمت تا مستقر جارلیه به شیع الخطان و حج البيت. بر, بر و از ازاق هم اعتزال الاسنام و اقتصال من جناب بره من غیر از اینجا دیگه جایی اینجا چی رو ما همشه همشه هم که هنریه خون دادن برام میگه همیشه که رو هنریه به فصل کردید اختصاله رو نرجع نشون. ازش اینو محترمش هم یک کلام نمیدونم نمیشه به ذکر خیلی چند تا کتاب پشت سر هم آوردین از صدویی نیست. تفسیر طبری هم دارن برچویس علی این کتابو خوردی نه؟ باره مشکلی دو زبانه عرب و قاموس و تاج العربی ایشون از این مصادر نمی من خود من تا جایی که گرشم دوباره دوباری این که چون این از کنم روز دیگر این واضحه که وضوع و تیمم در قرآن آمده در عذیان قبلی نمی اما شواهد مشهره که قسل بوده در جنابه چون داره به امکنتم جنابه فتح هم. ساکت شده که یه من درسته این نشون می که بگه که قصجیناوات از اسلام بوده یعنی آشنا بودن ذهنی در نبوده احتیاج به شهر داشته و لا جنو من الا عاب الکبیر حتی تخصص بود خصوصیات نه وجود در پس وجوه و ادکون در مراسم تئمو از رتن تا وجوه و ویدیک و می تئمو اونج کیفت اما کیفیت اختصان انسان است این هر فرد مایداریه یعنی حرف درستیه این هر اصل این هر به نظر میاد که قصد جنابت صادقه داشته این که شهر در قرآن نخوابه این صادقه داشته اما تا اونجایی که من در رسی کردم غیر این در مسادر شیعه کتاب ترقی احتجار و در مسادر سونیات اینجا از این دسانه عرب و خاموس اگر شما من نشون در مراجعه کنی دارم همین شما نشون مراجعه کنی در اینجا دارم این شما شدیه که دوسا حسابی نشد بلند خود سرکار الله و نعم اعتذال بر اشنام بل اعتصالم به جنازه اما شواهد معارضین همین هاست خلاط یه بحثی خیلی مفصل ایشون داره این وقتا مشو من تلاور پیدا بشه و مدار بکنه یه بحث خوبیه ایشون از اون ته بحثش رو آش یه مقدارین تقاثیر ایست که در که تو محصول این در که اصلش چیه نمیشه نمیشه قلم های اسلامی که اصل هنفه و هنفه منوی ماله و هنفه قدمه کجی پاپه ها یک کجی اینه که اون پاشناسا کجی داره هنفه, و هنفه رو میدو کل دباید به منحوان حوال اخرابتاش چپش براکس راستش, راستش کجی داره ول هنف و در این به نظر من میاد جمع شده به این یک لفظی که عربی نبوده بعد در عرب به این معنی آمده بسید جمع کردن به لذاب ایشون اگر حنف مید باشه نه ایشون این نیمیدی من محبه. خب زدش هم هنف دیگه چون اگر هنفانه مید باشه اینکدی باشه همچنان که از باطل به هم از هم به باطل هنفه وله و هم ایشون اینطور این بعد هم اون معانی که بعد بردرمانی و خود ایشون بعد مثلا ایشون از کتا تخرازی و تبرکی نهارو کرده در تفسیر های مبارکه ایشون اصلا از, از کتاب شیعن یا عده از مجموع بیان ایشون نهارو در کتاب تخزازه و فلحن ایفی یکه اربع انها ها جلوه انه این عباس و حسن ها مجال ها انها اتباع و حد در احوال مهم نیست الان در کتاب احوال سنن مثلا میگن قول کلان و قولان اون برهی تاریخی شو اصابه بگنید قول اول از عباس از نحباس این احوال از جلوه اصحاب معنی میشه از همون زمان صحاب وقت احناف مز این بودش نگاه بکنید کار نازید به اسما اسباحه اونه میدید یعنی مرده میشه خودصحابه در تفسیر احناز و هنیفی یک بحث داشته که بسیست سو مجادن همون جزه تابعی ها انها اتباع هم ان مجادن سالس انها اتباع ابراهیم تیم و اعدادی منش شریعته لکیس به ها امامن در ناز بعده منن حج ولی خطان و غیر زاله و رابع انها اخلاص از اخلاص لداره تعالی ورده ولی اقرار به ربوبیه ولی ازعان به ربوبیه این چهار دارد و که این سافن مجموع رواست میگان کن به نظرم معنی لفیفتریشون زهنگو همه احتمالاتی دارده اونی که لفیفتر در نیست حالا این خیلیم که در زهن بعض المستشریم بله لفظه من اصلا ابرالین تهینود تهنود یا منهل و معناه تهنوس تهنوس یعنی عبادت یعنی روح تهنوس یعنی ترک دنیا روحبانیت لباس های خشن پوشیدن و قال نرده که همون لحظه عقبی هم تهنم تهنم براده تبرو که ایشون این رو معنی دینی گرفت اصلا من احتمال قرمی میزم آمده به اصلی از کجا باشه؟ اصلی این کلمه باد عربی باشه از همون زبان از اصلی براهین بوده زبان اصلیشان بوده بعدها از دوش دیگه آمده این حصل عربی نیست اما اونی که ما از مجموعه روالیات خودمون که هنیفیت زادریه داریم هنیفیت باطنه داریم اونی که از اونها در میداد بیشتر پاکیدگی و, پاکی و تهارته، نه حج جل اینا تو این ها رون نه. نه اخلاص و عبودیت اله این اصولا شعار از فبرارین سلام الله این بوده که پاکی و پاکی دیگه از کردن مثلا یکی از شعارهایی که در خود علیان کلن بود سلامت لا در به سلیم این خود جرده از علیان مسئله سلامت یه مسئله استی این خیاله همه یه لحظیست که مثلا به قلب سریعی مثلا در دیگر سال یه سلام حتی مغلقه هست این ارشالی کلمه شریع شریع هم سلام فارسی عربی البازه قبلی با عربی خیلی نزیم ارشالی شه. این شهر سلامه شهر صالح اصلا جز یک نیست. هستن که این محنی با تویهی رابطه مستقیم دارن یه هیچ همین و تهارده یه هیچ کلامه یعنی ترمیشون این بود انسان مبهر کنه انسانیست که در تمام جهات پاک باشه یا در تمام جهات سالم باشه که حالا بحث سرامان جره خودش داره بحث پاکی لذا در برایات ما این به پاکی معنی پاکی زادری پاکی زادری به سر پاکی زادری به جسر مجموعه هنفیت رو به این گرفتن حتی خود خطنه حالا که در براتی ما آمده در را تحرستان چرا چون این که خطنه شدن برای این هم از داره ثابته به قول خودشون خطنه پیزشکی میکنن یعنی چاره نیست مثلا ممکن از فخراک بود اینا جمع میشن و تولید یک نوع میکروب ها و بعد انغاز پوستی و غیب پوستی و بعد لذا مجبور شدن به تا جروع امراض گرسه بشه و هرها اینها ظاهرا هنه آثار پاکیزیدی بوده اون توهید و شرایی اردین احلاسون اینها رو جزء تحارت باطنی قرار دادن یه بحثی و رو... اینجا شما یه بحثنا شده دکتر جاد علی بحث میکنه هی بحثی ایشان در تیفه همه بحثی ایشان مثلا نکات ذریف داره جنبندی ها نیست. خلاصه اینه که ما الان اگر بخوایم آیات مبارک قرآن رو جمع بکنیم با مجموعی روایات و کلمات مفصلی مقید مفصلی حدود حنیفیت رو کشتید بدیم سوال سه حنیفیه ایمان به خدا بطرسی نکردن خط نکردن نماسوندن حج رفتن میگه الان مشکل راسته چون تبییدهایی از مجموعه افراد به نام حنیف بهشون نسبت داده شده، نمی‌دونیم اینا جز یکی ای از تبییحات عجیبه. میگه یه فرقه اصلا وجود، مثلا احناف کسایی میگن که سفر می‌رفتن، سفر‌های علمی می‌رفتن، دنیا رو می‌دیدن، با ور دنیا آشنا می‌شدن. یعنی مرزبان رو کنسپتی بودن. مستقیماً با حوادث روبرو می‌شدن. به جای که میشن دسته بگن مثلا در شاپ چی میشه، در باز چی میشه. بولا نمی‌شدم یه یعنی نظر بوده اهل کتاب بودن اهل مطالعه بودن اهل نوشتن بودن کتاب دیگه بودن این مرحله کلیشه‌ای از تا آخر مراحل یه می‌خوام یه خیلی متفرق. این انصافا یه نکته لطیفه یعنی این نکته منم خوندم انصافا خیلی به دمیجه واضحی نرسید طور کلی خلاقیتو ترسیم بکنیم به نهر اجمال بهترین ترسیم همین آیت انصافا تو کلماتی خود وراد بهتر از همه هنیفیت ترسیم کرده در قبال مشرکی و یهود و نصارا یعنی هنیفیت دین ایرادی در مقابل این سکتا اما در مقابل مثلا یهود همه اهلی کتاب بزن حدود واقعی تهنف چه بوده انصافا یه منگاه به داره